بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب البخل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قلنا جد ابن قيس على أنا نبخله قال وأيداء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلین وآلی وصحبه جمعین. اما بعد سادو سومین ب از ابواب ادب مفرد من بخاری. تقریبا الان چلومین درس از درسای سهیاد مفرد. در 227مین حدیث، حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه که می‌گوید رسول الله صلی الله علیه و سلام من سیدکم یا بنی سلامه بنی سلامه قبایل از قبایل مدینه بودن که رسول الله صلی الله علیه و سلام از اونها میپرسه شما شیختون کیه؟ رئیستون کیه؟ رئیس قبیله سیدتون، بزرگتون، اون کسی که در اختلافاتتون بهش رجوع میکنی برای حل اختلاف برای منازعاتتون اختلافاتی که بینتون پیش میاد کی حل و میکنه؟ من سیدکم یا بنی سلمه ای بنی سلمه سید شما آقای شما بزرگ شما کیه؟ قلنا جد ابن قیس فلانی اسمشم بردن جد ابن قیس ولی که یک عیبی داره این شیخمون بزرگمون سیدمون على اننا بخیله نز ما از دیدگاه ما على اننا از دیدگاه ما ما او را بخیل میبینیم و يعني بخیل و یعنی بخیل او را میبینیم غیبت کردن درسته غیبته دیگه پشت سرشتان هفیزنن شخص اونجا که نبود رسول صلی الله علیه وسلم داره اونها میپرسه شیختون سیدتون بزرگتون کیه گفتن این شخص ولی که شخص بخیلیه اینجا اقرار رسول صلی الله علیه وسلم و عدم انکارش بر اونها دلیل بر بیه؟ دلیل جایز بودن غیبت در اون جای که مصلحت ما گفتیم هفت جا درست غیبت کردن یکی پیش قاضی اینجا رسول الله اصلا قاضی حاکمه رسول الله صلی الله علیه و سلام قاضی حاکمه بخاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلام انکار در قبال این غیبتشو بس اینجا غیبتو رسول الله صلی الله علیه و سلام اقرار میکنه و چون بخل صفته بدیه بخیلی بخیل کسی که انفاق نمیکنه بخیل کسی که مالو نگاه میداره بخیل کسی که صدقه نمیده بخیل کسی که از مالش خرج نمیکنه خرج اهلش خانوادهش زِد کریمه کریمه اون کسی که بخشش داره میبخشه انفاق میکنه چه برای اهل خانواده چه برای دیگران خب اینجا از دیدگاه اونها این شخص یک صفت بدی مذمومی داشت و رسول الله صلی الله علیه و سلام مقرب بود بر این صفت بعدش خاطر همین حرف اونها را تکذیب نکرد چون بالاخره وفدی اومده بودند یک مجموعه از اون قبیله اومده بودند اونها وقتی که بر شیخشون و سیدشون این چنین گواهی دادن رسول الله صلی الله علیه و سلام و ای دائن ادوا من البخل چه مرضی بدتر از بخل از خساست ای دائن ادوا مخصفه بدیه مزمومه چه عیبی بیالتر از بخل عیب و مریضی دا دا مرضی درد یک درد معنویه دردها متفاوتن جای درد حسیه سردرد شکم درد پا درد جای درد معنویه مثل اینجا و ایو داع ادوا باتره سختره چه مریضی باتر و سختتر از بخل درد رنج وقتی که اون شخص خرج اهلشو نکنه خانوادهش نکنه اون زن تو خونه چی میکشه؟ کشه مثل اون زن صحابی که اومد از شوهرش گلایه داشت همسر ابو سفیان اومد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله خارجو نمیدم چیکار کنم اجازه دارم از جیبش بردارم گفت که بله به ای که کفایتتون بکنه خب درد رنج انسان داشته باشه ولی خرج نکنه زن بچهش در مذیقه باشه ولی خب گفتیم یعنی چنانچه رسول الله صلی الله و سلم به اون زن مجوز میدن به اندازه حاجتشو نزدش از اون بخیل برداره پس بد دردیه بعد دردیه بخل، جزء صفات مذمومه که حالا میاد رسول الله صلی الله علیه و سلام از, از کرمش که قبلا هم داشتیم که چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلام انفاق می‌کردن تشبیه صحابه بر چی بود رسول الله صلی الله علیه و سلام همچون بادی بود که می‌وزید پول دستش می‌اومد بین اون می‌داد انفاق کرد بل سیدکم عمرو من الجموح بل سیدکم عمرو بن الجبوع رسول الله صلی الله علیه و چه بود گفتین اینجا شیخ اون و سید اون قبیله رو عوض میکنه جد بن قیس اهلیت نداره که شیخ شما باشه، سید شما باشه، حاکم بر شما باشه. سید شما عمرو بن پس تغییره تغیره اون کسی که واهل برای تغییر دادن، نه اینکه اینها به بزرگ رجوع کردن برای حل و فصل. نیست که مثلا از خودشون بیان این کارو بکنن، نه اومدن، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلام کردن از سید خودشون، از شیخشون، شیخ قبیله‌شون بعد رسول الله صلی الله علیه و سلام یاد باز یعنی اینا خودسرانه این کار رو انجام ندادن. باید یک بزرگتری باشه که حرفش خریدار داشته باشه. چون اگر خودسرانه بخوان این کار رو هر کسی مثلا بیاد بگه من از این خوشم نمیاد. اون بگه نه من از این خوشم نمیاد نمیشه. این سبب تفرقه میشه. باید یک کسی باشه که حرفش خریدار داشته باشه و حرفش برای خودش وزنی داشته باشه. باید اون شخص وزنه باشه و حرفش وزن داشته باشه. تا اون که اون افراد، افراد اون ایل، تبار، قبیله در اون نزاعاتشون بهش رجوع بکنن و این فیصله بده. حرف باید وز داشته باشه از اون کسی که وز داره تا دا فیصله بشه. عمران جمع شخصی بود که در جاهلیت وزنی داشت. یکی از اون وزنه ها که سبب شده رسول الله صدقه او رو انتخاب بکنه برای اینکه بر این ایل تبار شیخ باشه و سردستشون باشه. سیدشون باشه، آقاشون باشه، کرمش، بخششش چنانچه اینجا جابر میگه و کان على علی اصنامهم فی الجاهلیه عمر در جاهلیه کسی بود که مسئول بطا بود که کسانی که نز میکرند این مسئول خزانه ها بود و کان یولمو عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ایده تزوج بعد از اسلامش هرگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ازدواج میکرد به جای رسول الله صلی اللہ علیه میداد کرم یا کرم نیست؟ کرم خب این حدیثی می‌رسونه این قسمت یاری کردن جوانا برای ازدواجشون خصوصا اون کسی که تواناست توانمند از لحاظ قدرت مالی داره اونایی که توانمندند از مالی دست جوانا رو بگیرن و یاریشون بدن در ازدواجشون با مالشون چنانچه اینجا این صحابی با مالش خزینه ولیمه عروسی رسول الله صلی الله علیه و salam می‌داد دعوت میکرد اصحاب و یاران. بوجو گسپرندی سر میزد برای که در اون شادی با رسول الله صلی الله علیه و شریک باشه این صفت خوبیه این صفت نیکیه کرم بخشش اعانت، یاری و در مقابل اون ضد اون بد مذمومه انسان خیلی از مؤهلات رو از دست میده و من معمولاً هر از گاهی یک گوشه‌ای از قصه یوسف رو یاد می کنم علیه السلام مناسبت داره چون کل اون امور زندگی و روزمرگی مون در سوره یوسف داریم والا کلش اگر نباشه جلش شب و روزمون اون مسائلی که در سوره یوسف هست ما باش سر کار داریم به همین هی تکرار میشه یوسف علیه صلاته و وقت، وقتی که پادشاه مصر او را به دربار میخواهه یوسف خزانه داری رو انتخاب میکنه بعد دو تا چیز رو یاد میکنه در مؤهلات خودش گفت که اینی حفیظ و حافظ حساب کتاب بلده درسته؟ سرشمالی میکرد، آمار میگرفت و الى آخر چون از بچگی پدرش یاد داده بود بهش معهلات دنیویه و امینه معهلات دینیه شرعیه امانت داره الله را مراقب خودش میدونه حسن امتحانات پست داده بود در قبال زلیخا و فتنهای زنا و شخص امینی امانت داریه قیانتکار نیست از الله میترسه این دوتا معهل بود که اهلیت داد به اینکه زمام امور امپراتوری مصر رو به بگیره. اینجا هم شما در این انتخاب رسول الله صلی الله علیه و وسلم این قضیه رو میبینید این شخص مؤهل دینی داره، حب رسول الله صلی الله علیه و سلم یاری دادنش، خصوصاً مشارکتش در ولیمه، خب این ایمان دیگه. و مؤهل دنیاوی کرم، بخشش، دست و دلوازی، اینا هم مؤهلاته که سبب میشه شخص اون جایگاه رو به دست بیاره. و به ما رسول الله صلی الله علیه و داره یاد میده که چه صفاتی داشته باشیم تا این که باشیم به جایگاه پست مقام فردا در به ما دادن از پس اون بر بیایم اگر این دو تا صفت در ما نبود وای بر ما اگر مسئولیتی بپذیریم که فردا روز قیامت حق مردم و بال گردن ما باشه وای بر ما از الله نترسیم و درست اون مسئولیت را انجام ندیم صفات خوبه سبب متح میشه و صفات بد سبب صفات خوب سبب متح و ستایش میشه و یاد نیک و صفات بد سبب این میشه که ما به بدی از صرف یاد بکنیم و نشانه بدیه خصوصا در خاتمه انسان از دنیا رسول الله صلی الله علیه و سلم جنازه ای را میبینن بعد میشنه من که اصحاب خوبیش میگن آدم خوب صالحی بود رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمودن وجبت واجبت جنازه دیگر رد شد بدیشو گفتن اونطوریه اونطوریه قال صلی الله علیه و سلم وجبت فجبت صحابه تعجب کردن اینجا گفت وجبت اینجا گفت وجبت یکی با حسنه خاتمه رفت مردم یاد نیکی ازش کردن دعای نیکی کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وجبت فرشتگانم میگن میگه درقبال اون دعای ما خاطر همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه از نشانه های حسن خاتمه اینی که تعداد زیاد روم جنازه نماز بکنن و یاد نیکی ازش بکنن نشانه حسن خاتمه است و در ضد اون نقیض اون وقتی که به بدی از یک طرف یاد بشه و کسی نیاد سر جنازش نشانه چیه سوء خاتمه اون حسن خاتمه است این سوء خاتمه پس همیشه یاد نیکی از خاتمون بذاریم خاتمه از دنیا نیک باشه مردم به خوبی از ما نه دنبال این باشیم ما یعنی هدفمون ریاکاری باشه اینکه مردم بگن که آقا دست و دلواز کرم داره نه مراقبت الله جل وعلا لله اون کار انجام بدیم حب دینمون شریعتمون دینمون رو دوست داریم این کارو انجام داریم میدیم الله جل وعلا توصیه کرده و ما هم داریم این کارو انجام میدیم هم شیخ قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثناه شيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا والراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنكتب اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال و اضاعت المال و کثرت السؤال و عن وهات و عقوق الامهات و عن وعد البنات دیویست و بیست حدیث از حادیث صحیح ادم مفرد ایمان بخاری اونایی که اصل کتاب دستشونه حدیث شماره دیویست و نویده هفت حدیث وراد کاتب مغیره مغیره بنو شعبه کاتبی داشت می براش قاله کتب معاویه الى مغیر ابن شعبه رضی الله عنهما معاویه می نیب سنامی تقو زید ریاض کی از مغیره چرا از مغیره ابن شعبه طلب میکنه و خصوصا تلاشی که مال دنیا درش نیست طلب علمیه چیزی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدی به من بگو چرا چون مغیره عالم تر از معاویه اصلا هوز علمی برتری بیشتری داره نفازله علم انسان فاز میده علم انسان شرف میده. معاویه شده پادشاه مسلمان ها ولی محتاج عالمه مثل دوباره قصه یوسف امپراتور مصر محتاج کیه؟ یوسف حاکم محتاج عالمه عالم محتاج حاکم نیست مردم محتاج عالمه عالم محتاج مردم نیست مردم بدون علم گم راه میشن راهشونو گم میکنن از سرات مستقیم خارج میشن عالم راهنمای مردمه معاویه تقاضا میکنه از مغیره که براش أز أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيسة أن أكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة مغيرة بنبيسة الله فرد درواتي فأمل عليه أملا قوفت كما بنبيسة بعد خدش ميجا وكتبت بيادي وكتبت بيادي بالدرس خد منبيشتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى ودرواتي سمعته يقول ينهى عن قيل وقال أن رسالة كان ينهى عن وقال. قيل وقال الآن قبل قيلة قال برين إنجا هناك مسألة خصوصاً در علم مصطلح حديث و هناك اقرار الصحابة بر كتابات نقل حديث انتقال شخصي بشخص ديگر باش شنيدان دارين تحديث وإخبار ولو خصوصاً لفظ حدثنا سريح ترى بلاتلات ان سمعته ما عنوعة تلاقي دارين تلاقي شاقر در شيخش جاي باش شنيدان مصطلحين بإقرار بإن كغام من شنیدم مستقیما سمعتو. حالا در برتر بودن سلاحات که به کار برده شده در تلقي و گرفتن حدیث از شیخ اختلاف هست. خب جمهور برینن اینن که سمعتو بالاتره بعد حدثنا، بعد اخبرنا و عن بنا و الى اخره. سمعتو صریح دارین که شنیده. پایین ترینش و عن، عن و ان که سریح نیست در شنیده. از جمله انواع که حکم شنیده رو داره. کتابته صحابی نوشته یا کاتبی هست که نوشته براش مینیویسه برای صحابی دیگر کتابته حکم چی رو داره متصله متصل نیست متصله حکم شنیدن رو داره حکم شنیدن رو داره مثل که خودش داره از مغیره میشنوه چون مغیره داره براش مینویسه یا به کاتبش میگه که بنویسه مادر همین ابن حجر در فتوا داره میگه و فی الحديث حجت من لم يعمل فی الروایه بالمكاتبه بازت علماء رو قبول نداشتن میگن سریح نیست در شنیدن ابن حجر میگه این حدیث دلیلی در رد بر اونهایی که کتابت رو قبول ندارن کتابت حجت. یکی از اون چیزهایی که خیلی به درد ما میخوره در بحث کتابت روایت هایی هست که علی بن نبی طلحه از ابن عباس نقم میکنه امام تبری در تفسیرش کتاب جامعش از این سه هزار تا روایت از ابن عباس نقم میکنه در تفسیر ابن عباس کاتبی داش و این کتاب ابن عباس رسیده دست علی بن بیت الله علی بن بیت الله امنق کرده بعضی ها این نقل را از علی بن بیت الله قبول ندارن ولی صحیح اینی که اسانید علی بن بیت چون از باب کتابت بهش رسیده از کتاب ابن عباس حکم متسر رو داره حکم متسر رو داره این حدیث قبلا ما داشتیم حدیث شماره 16 به مختصر همین خوندیم این قبلا یاد شده انجام باز دوباره تکرار داده میشه در این باب باب بخل مغیره نوشته به معاویه رضی الله عنه که رسول الله صلی اللہ علیه و سرناهی کرده اولیش از قیل و قال قیل و قال حرف مردم فلانی خرید فلانی ماشین خریدی دی دیدی عجب ماشینی ماشین سیایی خریده بود سفید بود فلان بود اینطوری بود توری بود فلانی شنیدی؟ زنش طلاق داده فلانی دعوا کرده بود و همسایه فلانی کتک زده بود قیل و قال گفت کردند رفتن اومدند به ما این تجسسه، این تحسسه، کنشکاویه، سرک کشیدنه شما مثلا تو بحث سرک کشیدن کسی خونه کسی نگاه میکنه در شر حکم شیه اگر زدی و میلی تو چشمش با سیخی و چوبی چشمش شکر کردی کردی چشمش حکمش شیه هدره درسته؟ رفتی پشت پنجرهشون شون حرفشون رو گوش دادی تجسس کردی ولی اونه که تجسس میکنن بین زن و شوهری و بینه. مسائل خصوصیشون برای سرکشیدن برای فتنه انداختن فتنه گری حکم قرآنی لا تجسسوا شخص سلام نیا تجسس میکنه عقوبتش چیه رسول الله صلی الله علیه و سلامی فرمایان این اشخاص سبب فی اذانم الانک آنک چیه سور بغداخته عقوبتشون در روز قیامت سور بغداخته توی دوشاشو میریزن بخاطر همین دنبال قیل و قال بودن چی گفته چی کرده این داره تجسس سره میکنه سرک میکشه حالا چشم با چشم چه با گوشش این ها وعیدهای سختیه گناه های کبیره هست که انسان به خودش اجازه بده سرک بکشه توی زندگی کسی و دخالت بکنه خصوصا خیلی بدتر از این یک از مشکلات زندگی امروزی خانواده ها خصوصا این طلاقهایی که پیش میاد بیشتریش خاطر قیل و قاله زنه فکر میکنه که این سخنگوی یک نهاد خبریه شوهرم رفت اومد خرید برد فلان کل سر احصار زندگی رو کف دست یکی میذاره خاله مادر خواهر و اونا هم دیگه کل اون بیوگرافی اون شوهر به دستشون اومده از باب دلسوزی گاهی وارد میشن گاهی از باب طمع وارد میشن یا بکشن یا گیر بدن که بیشتر این زندگی ها ختامش به طلاقه از کجا نشعت گرفت این اختلافات و تا به اینجا رسید؟ سخنشینی نقل اخبار قیل و قال نقل اخبار چیزی که به مردم ربطی نداره تو رو را دخالت بدی چه خودت دخالت بکنی چه دخالت بدی چه خودت دخالت بکنی تو زندگی مردم چه دیگران رو دخالت بدی قیل و قال قال فلانی گفته قیل گفته شده حرفی از فلانی شنیدی بری به کسی دیگه بگی خب چه ربطی داری به دیگری حرفی بین تو همسایت بوده چه ربطی داری به فلانی فلانی گفته خب بعد هست در مسائل دنیاوی قیل و قال و اضاعه المال نهی کرده رسول الله صلی الله چیزی که نه کرده میشه حرام و اضاعه المال اضاعه المال ضایع کردن مال صرف کردنش در جایی که اون جاش نیست صرف کردن اون مال در اون جایی که جاش نیست حالا جایی رشوه هست جایی اصرافه و ملعروسیه ولیمه هست دعوته جایی دادن اون مال برای اون سفیه زنته حسن تصرف در مال نداره ریخت و پاش میکنه میره بازار چشمش به لباس میفته میخواد بخره چشمش به اون لباس افتاده میخواد بخره چشمش به این ظرف میفته میخواد بخره کلوکسیونت ظرفه تو خونش کمودا دیگه جانیست انواع بشخ بازار رو جارو زده. این چیه؟ اضاعه مال هست یا نه؟ زایه کردن اون مال هست یا نه؟ خوصا اون مردی که دیگه حساب کتابش دست زنش میده. درآمد داره خرید و فروش میکنه. این قد خریدم این دارم اون زنم تمام میکنه. اون مردم هیچ پسندازی نداره برای آینده خودش و بچه هاش. مالش رو گذاشته کف دست خانمش و اون خانمم تو پول لاری طلا برای من نمیخریه. سرویس طلا میخواد، بعد فردا ماشین میخواد، گواهی نامه میخواد بگیره، بعد این ماشینم سرش نمیاره، این ماشین نه اون ماشین دیگری تو که پول داری، این بلا و مصیبت یا خوشی و خوشبختیه. این چه چی احساسی تو اون زندگی داره؟ احساس خوشبختی میکنه یا بدبختی؟ بدبختی، خاری، زلت جون میکنه شب و روز، پولی که در میاره درآمدش کف کیه اون کسی که حسن تصرف در اموال نداره، فقط می‌خواد موبایل عوض بکنه، موبایل نه این جدید تر اومده مده هم عوض کو تو داری جوم میکنی که بعد بیای بازی با اون پول بکنی زایعش بکنی از این موبایل به موبایل دیگه از موبایل به موبایل دیگه این اضایع ماله این ضایع کردنه مال یک از چیزهایی که ما در صحنه محشر ازش سوال میشیم ماله فیما افنا در چه روی خرج کردی به چی دادی این مال به چی دادی این مال صرف چی کردی ماله نعمتیه که ما در قبال اون مسئولیم به روز قیامت سوال میشیم این حدیثی که داره معاذ ابن جبل به معابی رضی الله عنه نقل میکنه و کثرت سوال سوال ما سوال معنوی داریم علمی داریم و سوال حسی داریم سوره بقره یکی از مزامینش نهی از سوالهای بی خوده اومدم بنی اسرائیل به موسی گفتن براین که قاتلشون مشخص بشه موسی گفت الله میگه که یه گاوی رو سر بزنی گفتن خب این گاو چه رنگیه چه توریه از کجا بیاریم؟ هی بر خودشون سخ کردن سخ کردن سخ کرد خودشون بر خوشون سخ کرد تا آخر که نزیک بود که دیگه که اون گاوی که الله معرفی کرده بود دیگه سر نزنه و گفت الله یه گاوی خودشون بر خوشون سخ گرفتن و سال سال بی خود سال از اون چیزی که روح نداده نکنیم نهی ازش. جایی هم سوال سوال دنیاست. گدایی کردنه. پول خواستن از مردمه. از چشم مدل دل میفتی. هرچنگ که تو محتاج شاید باشی. و عن منع و حات. منعین و حات. منع امتناع برزیدن از اون چیزی که باید انفاقش بکنی. بدی منع. نگه داری. مالی داری. فقیر محتاجی هست. همسایه، هست. حقوق همسایی که خوندیم. تو داری همسرت گرسنه است نمیخوای بدی منع زکات مال مانع انفاقش میشی دادنش میشی به مستحقینش منع وهات هات بده چیزی که حقت نیست بخوای بگیری دو تا میان میاد نظر رسول الله صلی الله علیه و آله اموال زکات میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله قد قوارشو میکنه چشمی بالا و چشمی پایین میندازه بعد میفرمایند این مال اموال صدقات و زکات غنی، سروتمند و قوی مکتسب درش حقی نداره لا حضافی فيها لقوی مکتسب ولا لغنی یعنی سهمی در این مال اون سروتمند و توانمند از لحاظ مالی و اون کسی که توانه جسمی داره که میتونه پول در بیاره سهمی در این مال نداره حقی نداره تو این مال این چیه نکوهشه، سرزنشه این داره از رسول الله صلی الله علیه وسلم در تحذیر دادن جوانا یعنی که در مال کسی نداشته باشن مال را از کسی نخواهند گدا نباشند آبروی خودشون را حفظ بکنن عقوق الامهات عقوق الامهات عقوق زده چیه؟ نقیزه؟ بره شخص حقه بدرفتاره کسی که از دستور پدر مادرش سرپیچی میکنه و بانها و بدی رفتار میکنه این عقل. از عقوق و بدرفتاری با مادران رسول الله صلی الله علیه و ما را نهی کرده و عن واد البنات و زنده بگور کردن دختران زنده بگور کردن که قبلا در جاهلیت رس بوده دختران خودشون زنده بگور میکردن و اشاره کردم قبلا یکی از زنده بگور کردن های امروز چیه وعده خفی چی بود حدیث عزل شخص مانع بشه از بچه دار شدن عزل کنه نظره که زنش حامل بشه نه قال المؤلف رحمه الله حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت ابن عيينة قال سمعت من المكدر سمعت جابر رضي الله عن ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا وقد تقدم باب المال الصالح وللمرء الصالح حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن العاص رضي الله عنه قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه ففعل فأتيته وهو يتوضى فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال يا عمر إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله و لك رغبة من المال صالحة قلت اني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح حديث قبله قبلنا خنده شده نجا نياز بالتكرار شنیس 124 مين باب عزب باب صحيح در مفرد باب المال الصالح للمرء الصالح مال صالح مال صالح مال paque ماله حلال براي مرد قاك وصالح دي بس بس نهمنه حديث حديث عمر بن العاص رضي الله عنه كم يقول بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بعث إلي يعني صلى الله عليه وسلم شعصير من برم برمبيش بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني مرد السردات أن آخذ علي ثيابي وسلاحي لبوسم زريهم اصله هم اینا را بپوشم بردارم ثم آتی و بیام نزدش شخصی را میفرسه و دستور میده اصله و لباسش را برداره بیاد نزد رسول سلام برای چی؟ برای غزمه هست جهاده معمولیته خف تو لباس و ذره را گفتم شمشیر را اینا بر میداره لباس اومده خب منذور لباس رزمیه لباس جنگیه نه هر لباس چون شمشیر هم در کنارشه و سلاحی اصله هست نیاه با ما دیگه کامل بیاد برای رفتن به یک نبردی میگه ففعلت کارو کردم اومدم نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم فعتی توه و هو اتوضع اومدم نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که او می میگرف خب چرا وضوع گرفتن رسول الله رسول صلی الله علیه و سلم یاد میکنه خواهد به برسونه که این حدیث را کجا شنیده و چطور شنیده این نشانه حفظ و دقت اونها در یادگیریه. وقائره درس حفظ میکنن مبينن ومشنون فصعد إلي البصر ثم طعط فصعد چشمي بالا انداخت وچشمي پاين انداخت يعني نگاه قد قبرم ثم قال سپس فرمودا صلى الله عليه وسلم يا عمر اني أريد أن أبعثك على جيش بخام ترابه فرسم با یك ارتشي در جنگي نبرد با مشرقين فيغنمك الله والله الله از اون جنگم بهت بده. بشارته. با رفتن به این نبرد تو صاحب این غنیمتی هم بشی. و ارغبو لکه رغبت من المالی صالحه. یعنی من برات میخوام که مال صالحی را بیابی مالی گیرد بیاد که پاک باشه. یعنی دوست دارم تو رغبت دارم دوست دارم برای این که تو مال پاکی گیرد بیاد. قلت عمرو عاص میگه. نیلم مسلم رقبته فی المال یا رسول الله من بخاطر مال مسلمان نشدم پول نمیخواد این صدق ایمانه کیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلام من بخاطر مال مسلمان نشدم برخلاف امروزی که دوستی و رفاقت بر سر چیه مال جدایی هم بر سر مال اختلافات بین ما بر سر مال صحاب مال نمیخواستن من مسلمان نشدم بخاطر مال انما اسلمت رغبه في اسلام من اسلام بخاطر دوستي <ساعد> اسلام حب اسلام مسلمان شدم فاکونه معرس الله صلى الله عليه وسلم دوست رب الله صلی علیه و سلام باشم در این دنیا و در اخرت نروکید فرق تفاوت ایمان و ایمان ایمان ورده که با الله علیه و سلام باشه این رفاقتش صداقتش بخاطر اینه و شخصی دیگر بخاطر غنیمت بخاطر مال مسلمونیش بخاطر دنیاست این مسلمونیش بخاطر آخرات ای مسلمانش منیش دنیاست گفتم صدق صحابه و بیان اونها از اون چیزی که تو قلبشونه. داره خبر به همون میده عمرو بن از اون چیزی که تو دلشه کسی که از دل کسی با خبر نیست خودش از اون چیزی که تو دلشه داره بگه به رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله من تو رو میخوام ماله چی کار بکنه ماله چی میخوام بکنم با مال من به خاطر اسلام و به خاطر اینکه با تو باشم مسلمان شدم هموغم گفتم یعنی هم هموغم ها متفاوتن. بازم دوباره باید کنم به قصه یوسف همموقع یوسف در فرار یه چیزی بود همموقع به زلیخا یه چیزی دیگه بود یکی دنیا و حوص بازی یکی فرار از حوص هر دوتا هم دارم میدوند به طرف در هر دوتا دویده نه دارم میدوند. و یکی بخاطر فرار از گناه و الهی و یکی بخاطر رزایت شیطان و هوای نفسش ها متفاوته و اون نیتته که اون عملت رو درست و صالح میکنه بخاطر همین رسول الله ص یا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح نعم فعل وذیر برای انشاء گفته میشه برای مدح و ستایش گفته میشه بهترین مال از اون مال پاک و صالح برای کیه برای فرد صالح این توصیه و تشویق برای ثروتمندا اینی که آدمای امین و صالحی داشته باشن که نصیحتش بکنن که مالش رو کجا و چگونه انفاق بکنه و بیکی بده و انتخاب بکنه اشخاص صالح را برای انفاق کردن برای اونها خانواده که مستمندان و مستحقن از لحاظ دینی ایمانی اهل نماز و طاعتن انتخاب بکنه مستحق وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله مال صالح للمرء صالح شخصی متاده مشروب خاره بدبختم هست فقیرم هست. مال تو بهش بدی یا ندی. معتاد میاد ازت ای میکنه پول میخوام غذا میخوام ندارم بهش بدی ندی نه ندی چرا؟ بهعات برمونکره. مال تو بر میداره میره در حرامش میذاره. مال تو به کسی بده که مستحقشه محتاجشه نه که اون مال تو در حرام بذاره دنبال بگرد. دنبال بگرد به اون کسی که صالحه صح اهلیت اون مالو داره. یعنی اون مال اون مال پاک در طاعت و عبادت جس استفاده میکنه نماز میخونه روزه میگیره صالح اهلیتشو داره اون مال اعانت و یاری میشه براش در انجام دادن طاعت و عبادت ولی اون شخصی که اهل دین نیست اهل طاعت و عبادت نیست دادن اون مال به اون شخص زایع کردن مال چرا الله در قرآن میگه ولات توت السفها و علیکم جعل الله لكم قیاما ولا توت السفها سفها آی که خرج کردن درست مال را بلد نیستن مالتون رو اونها ندید سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلی الله على محمد و اله محمد